سوره نجم هم سوره مکی هست از اون سوره هایی هست که اوائل اوائل مین سوره هست در مکه مکرمه نازل شد اولا ربطش را خدمت شما ارز کنم که در سوره سطور شما خاندید این عذاب, عذاب رب کلواقه عذاب رب واقع میشه مشرکان کفار به کیفر اعمالشون میرسن به سزای اعمالشون میرسند اما در سوره نجمی میخانیم که سفارش هیچ که قبول نمیشه شفاعتی هیچ که قبول نمیشه شفاعت برای مشرکان مراد است برای مشرک هیچ سفارشی نیست خدایانشون جرأت سفارش ندارن خودشون مشکل دارن لذا پس در این سوره هست که سفارش قبول نمیشه نما لیلات نما لیمنات نما لحوزا افرائیتوم اللہ تول عوزا و منات السالسا و نا فرشتگان سفارشی هیچ که قبول نمیشه پس موضوع این سوره چیست؟ نفی شفاعت غالب و شفاعت قهری هست خب در این سوره خلاصه این سوره اینکه نفع شفاعت هست و این که و منات و عزان نمیتونن سفارش بکنن و همچنین زجر است دلیل نقلی از انبیا هست از ابراهیم است از موسی، کلیم الله هست در این سوره نقل میشه و این سوره همون طوری که عرض کردم جز اولین سوره ها هست که در مکه نازل شد آن حضرت صلی علیه و سلم که تلاوت می کردند یتلو علیهم یکی از موارد تلاوت همین سوره بود که این سوره را آن حضرت صلی الله علیه مردم را جمع کردند اطراف خانه کعبه تمام جمع شدند هم در این تجمع مسلمان بود هم مشرک بود همه جمعیت بزرگ بود. رسول الله صلی اللہ علیه سوره نجم را خواندند و این سوره نجم همه چشمها را خیره کرد همه دهنها باز شد از بس که این سوره زیبا بود و از بس که برای اونها تعجب انگیز بود رسول الله این سوره را خواندند خواندند تا اینکه به پایان رسیدند و آخر وقتی که رسیدند آیه سجده را خواندند این سوره من ارج نکردم فراموش کردم اولین سوره اولی سجده تلاوت که بر آن حضرت نازل شد هم سجده تلاوت سوره نجم است وقتی که به سجده تلاوت رسیدن رسول الله خودش افتادم به سجده همه سجده کردند مشرکین هم سجده کردند کو مسلمانان هم سجده کردند بی اختیار سجده کرده این سوره اونها را معرف کرد، اونها را گرفت. فقط یک نفر بعضی میگه اومیه بود اومیه خلف اون یک مشتی خاک برداشت و به پیشانیش مالید گفت برای من همین بس همین کفایت میکنه یعنی نشد که سجده نکند ولی خودش را خم نکرد بعضی میگه ابو جهل بود ابو جهل مشتی خاک برداشت تکبر کرد او مثل بقیه خم نشد این خاک را به پیشانیش زد گفت همین کفایتم هم میکند لذا این سوره چنان سوره زیبا و چنان سوره پر تأثیری هست الله عز و جل در این سوره هم شاهد میگیرد ستاره را شاهد میگیرد. الله اللہ می فرماید وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم به ستاره وقتی که غروب می کند اِذَا هوا یعنی اِذَا سَقَتَ وقتی که می افتد می افتد یعنی غروب می کند ببینید ستاره علاوه از اینکه صدها منافع برای دنیا و اهل دنیا دارد یکی از منافع و فواید ستاره این هست که ما وقتی ستاره را ببینیم بی می توانیم که از ستاره راهنمایی بگیریم. به خصوص وقتی که تو بیابان، تو جنگل، تو وسط دریا گم بشیم ستاره بهتر راهنمایی می کند. مردم از ستاره ها راهنمایی می گیرند. اما کسانی که بلد باشند قدیما مردم زیاد بلد بودند الان نه الان مردم تک توکی بلد هستند خاص بعضی بلد هستند همه بلد نیستند اما یک وقتی هست که همه میدونند، عام و خاص زمانی که ستاره غروب می‌کند خب هر کی میدونه که ستاره کجا غروب می کند. مغرب دیگه غروب می‌کند اون جایی که ستاره غروب می‌کند اونجا مغرب است پس جانب مقابلش چیه؟ مشرق از دیگه اون طرف دیگه شمال اون طرف جنوب بس پس انسان با غروب ستاره چی؟ تشخیص میده راه راه راه درست راه پس ستاره هدایت هست راه است. هست برخصوص وقتی که غروب بکند. به همین خاطر اینجا اون حالت را ذکر کرده و نجم اذا هوا و این در واقع مقدمی هست برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم همون طور که ستاره راهنما هست راهنماییت میکنه گم شدی تو بیابان راهنماییت میکنه که این طرف مغرب است الان اگر می خای مغرب بری همین طرف برو می مشرق بری این طرف برو شمال میری اینجا برو پس به وسیله غروب ستاره شما راحت را پیدا میکنی این ستاره هدایت و این خورشید هدایت که رسول الله را خداوند خورشید فرموده سراج منیرا فرموده این خورشید هدایت هم هدایتت اطمیک گم شدی تو دنیا نمی دونی خدمت راه را بگیری لذا راهی که این خورشید راهنمایی اطمیک برو لذا الله سوگند یاد میکنه وان نجمی از هوا قسم به ستاره وقتی که غروب می کند ما ضل صاحبکم و ما غوا این صاحب شما این رفیق شما یعنی محمد صلی الله علیه و سلام راه را گم نکرده ما ضل صاحبکم راه رف را فراموش نکرده گم نکرده و ما غوا راه را اشتباه نرفته این راه را درست میبرد. اگر میخوایی هدایت بشی راه همینه ببر. ببینید یکی از ظلالت، یکی از غوایت. هر دو اینجا نفی شدند از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ما ضل صاحبکم و ما غوا. نه گم کرده و نه بی راه رفته و اشتباه رفته. ببینید ظلال اینه که انسان راه را فراموش میکند، گم میکند، همون جمیسته. این طرف نگاه میکنه اون طرف نگاه میکنه چپ راست تا راه را پیدا بکنه این را میگن گم شده دلال. غوایه این است که راه را گم کرده ولی نمیدونه من گم کردم میخواد بره به مشرق داره میره به مغرب متوجه نیست همین طور میره پس این ظلالت نیست این چی هست؟ غوایت هست این از ظلالت هم بدتره اون اولی بهتره یک جای ساده بلاخره از مقصد دورتر نمیشی اما این دومی هر لحظه به لحظه از مقصد دورتر میشی لذا الله می ما ضل صاحبکم ها اینجا یک نکته دیگه هست صاحبکم فرمود نفرمود فرمود نبیکم رسول فرمود رسولکم صاحبکم فرمود خود صاحب کلمه ای هست که از این صاحب استدلال بر حقانیت رسول الله گرفته میشه به اصطلاح عربی هازه قضیت قیاساتها معاها این جمله جملهی هست قضیهی هست که دلیل همراه خودش هست خدا میفرمائی صاحبکم یعنی این همه مدت همراه شما بوده قبل از بیسد چند سال با اهل مکه زندگی کرد چهل سال چهل سال با شما بوده، چهل سال صاحب شما بوده بچگیش را دیدی، دی، نوجوانیش را دیدی، دی، جوانیش را دیدید دی در تجارت دیدید، در غیر تجارت دیدید، دی دی آیا یک روزی حرکتی دیوانگی از او دیدی؟ یک روزی خلاف و دروغ بگه دیدید؟ یک روزی یک حرکت ناشایستی ازش مشاهده کردی؟ پس همین عمر رسول الله که درمیان شما یک عمر بود چهل سال بود همین خودش دلیلی که این فرد فرد صادقی است این استدلال در آیه دیگه با سراحت آمده فقط لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون ای مرد من یک عمر در میان شما بودم چهل سال بودم شما عقل ندارید اگر من من زعفی دارم من عیبی دارم خب این چهل سال شما حتما می دیدید کسی که دیوانه باشه بلاخر یک روزی ازش حرکت نادرستی انجام میگیره. این چهل سال همیش دوست داشتنی بود بهش می گفتی محمد صادق محمد امین محمد دوست داشتنی لذا این همه مدت صاحب شما بود لذا الله فرمه ما ضل صاحبكم پس همون مصاحبت و همراهش خودش دلیل بر اینکه این همراه شما راه را گم نکرده وما غوا راه را اشتباه نرفته وما ینتقو عن الهوا و ایشون نطق نمیفرماید فرماید از روح خواهشات هیچ نطقی نمی کند این هو الا وحی یوحا مگر اینکه اون وحی هست که یوحا وحی بیشه بسوئی او ببینید آیا هر سخن رسول الله وحی هست چند نو هست یکی که قرآن صورت وحی مطلوف می برای شما کلام الله اینکی وحی هست دوم دو وحی اون وحی که رسول الله می خداوند خداون چنین فرموده حدیث قدسی اونم وحی هست. سوم، اونی که رسول الله صلی الله علیه و نمی فرماید خداوند فرموده، اما امری که مربوط به شریعت هست، مربوط به حلال است، مربوط به حرام است، مربوط به جایز مربوط به ناجائزه، اون هم شک نیست که وحی الهی هست. مربوط به دین. چارم اونی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اظهار میکند که من میگویم یعنی از طرف خودم میگویم خب اونی که پیغمبر از طرف خودش میگوید اونم وحی هست چون اگر اشتباه باشد اشتباهی که خداوند تعالی اصلاحش میکنه درستش میکنه هیچ وقت اشتباه نمیکنه لذا هرچی پیغمبر میگه وحی الهی است این هو الا وحی یوحا این وحی را چه کسی به پیغمبر القا کرد و وحی کرد آورد اللهم میفرماید علمه شدید القوا به او یاد داد به او آموزش داد این وحی را بر او القا کرد اون فرشته ای که شدید القوا خیلی قوی هست شدید القوا یعنی جبرائیل امین جبرائیل از همه فرشتگان قوی ترست ببینید از آیه قرآن مجید معلوم میشه که فرشتگان قوتشون با بالهایشون هست با پری که دارن بالی که دارند خداوند در وصف فرشتگان میفرمد اولی اجنحت مثنا و ثلاثا و رباع دارای بال هستند یک بال دوتا بال دارند بعضیها ستا بعضیها چارتا بلا تشبیه هواپیمار دیدید هواپیمای کوچک، بالاخر بالهایشون دو تا هستن بزرگتر باشه چهار تا داره اینا قولپیکرها 6 تا 8 تا هم دارند بس هر چی که بال بیشتر باشه قدرتش چیه بیشتر است در باره جبرائیل می آید که رسول الله صلی الله علیه و می فرماند من او را دیدم 600 تا بال داشت باقی فرشتگان دو تا ستا چارتا او شیش داره و قوتش از اون حدیث معلوم میشه که قوم لوط را با اون شهر بزرگشون و های اطراف به تنهایی برد به طرف آسمان یعنی یک شهری را بردن به طرف آسمان خیلی قوی هست پس کار هیچ جننی نیست که بیاید دست برد بزند و راهش را بگیرد علمه شدید القوا به او تعلیم داد اون فرشته که شدید القوا هست قوت و قدرتش خیلی شدید است ذو مرته فاستوا اون فرشته ای که دارای زیبایی هست ذو مرته یعنی ذو هیئت حسنت دارای هیئت زیبا بعضی میگند این تعریف جبرائیل هست هم از نظر زیبایی هم از نظر عقل و خرد در عقل و فهم کامل است یا حسین و جمیل و زیباست پس زوهیت زمنین که بزرگ است بسیار زیباست فست و او بر افق مستوی شد یعنی اونجا نشست کجا نشست و هو بالافق الالا در حالی که در افق اعلا بود در افق اعلا افق بالا به طرف آسمان ها عرض به خدمت شما که جبرائیل همیشه خدمت رسول الله می آمد به وسیله انسان می آمد به وسیله بشر می آمد حتی بار اول آمد و رسول الله را به آغوش گرفت و فشار داد و گفت اقرا به شکل انسان می آمد رسول الله می فرماید اکثرا جبرائیل به شکل صحابی دحیی کلبی پیش من می آید اما یک روزی آن حضرت صلی الله علیه و سلم تمنا کرد در همون اوایل بعثت که جبرائیل را ببیند خدای عزوجل جبرائیل را جبرائیل را به شکل اصلی ببیند این نکته هم خدمت شما بگم که علما می گویند این خصوصیت مال رسول الله هست هیچ پیامبری جبرائیل را در صورت و هایت اصلی ندیده، به شکل انسان دیده باش صحبت کرده، هم کلام شده، اما به شکل اصلیش فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم دیده الان ببین در این آیات هست که او را دید نزدیک شد نزدیکتر شد نزدیکتر شد به او وحی کرد بعضی ها که تعدادشون است میگویند این درباره خداوند است یعنی شب میراج رسول الله خدا را دید نه این درباره خداوند نیست این درباره جبریل است قول محقق قول صحیح همین حضرت ام المومنین عایشه میگوید هر کسی که بگوید پیغمبر خدا را دیده او بزرگترین افترار را بر پیغمبر گفته گفتند ای ام المومنین مگر قرآن نگفته دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا نزدیک شد نزدیکتر شد به اندازه دوتا کمان به او نزدیکتر شد گفت اولین کسی که در این رابطه پرسیدم از رسول الله من بودم پرسیدم رسول الله به من گفت این جبرائیل هست که به من نزدیک شد لذا رسول اللہ وقتی که تمنا کرد که جبرائیل را ببیند بهش گفتن نگاه کن رسول الله هر طرف نگاه کرد ندید گفتن بالا را نگاه کن بالا را نگاه کرد سبحان الله تمام افق از مشرق گرفتید تا مغرب دو طرف افق جبرائیل تمام فضا را پر کرده بود تعجب کرد از این عظمت و وحشت هم کرد او نزدیک آمد نزدیک آمد نزدیک آمد این قدر به پیغمبر خدا نزدیک شد که قرآن میگه به اندازه دو کمان این کنایه از نزدیکی زیاد است در گذشته وقتی که دو تا طایفه با هم دیگه عهد میبستند با هم دیگه پیمان میبستند سرداران این طواف چکار میکردند کمانهای خودشون را به هم دیگه میچسپندند که می گفتن دیگه از این بعد کمان ما تیر ما به طرفی هم دیگه نمیره در یک جهت میره با هم میره به هم دیگه می چسبندند. این کنایه از هست از نهایت قرب و نزدیکی لذا این جبرائیل بود الله می فرماید و هو بالا در حالی درحالی که در افق بالابود، ثم دنا فتدلا سپس جبرایل نزدیک رسول الله شد، فتدلا پس نزدیکتر شد، فکان قاب قوسینه پس شد بین آنها، فکان یعنی بین آما قاب قوسینه به اندازه دوتا قوس، دوتا کمان، او ادنایی از انهم نزدیک نزدیکتر او به معنی بل هست بلکه از این هم نزدیک تر فاوحا فا الی عبده ما اوحا اینجا بود وقتی که جبرائیل اینقدر نزدیک شد الله وحی کرد به بنده اش توسط جبرائیل الله به بنده اش که رسول الله باشه وحی کرد توسط جبرائیل ما اوحا آنچه که وحی کرد این همونطور که در سوره قبل خاندیم دشمنان می دشمنانم میگفته این مریضی داره امروز هم میگن یک نوع مرض نفسی و یک نوع مرض فکری هست که فکر میکند این طور الله میفرمه نا ما کذب الفؤاد ما را دروغ نگفت دل آن که دید یعنی گای انسان تخیل میکنه بعضی مردم هستند توهم میزنن مریض هستند فکر میکنه میگه یکی به من میگفت همین مریضی را داشت به من گفت که من هر شب یک یک با بامن داره صحبت میکنه. خب هر شب این چیزهایی به من میگه لذا بعضی مردم اینطور هستند اما الله میفرماید ما کذب الفؤاد ما را یعنی دروغ نگفت قلب ایشون آن که دید آیا تو مارونه علی ما یرا برانچه که دید شما شک دارید یا با او اختلاف می کنید درگیر هستید قبول نمی کنید قطعا رسول الله جبرائیل را دید نه تنها اینجا یک شب دیگه یک روز دیگه هم دید و لقد رعاه نزلتا اخرى همانا او را دید نزلتا اخرى یعنی بار دیگر کجا دید عند صدره المنتهى نزد صدره المنتهى دید صدره المنتهى نام درختی هست صدر درخت صدر درخت, درخت, درخت کنر که به عربی صدرا میگن صدر اما چرابین میگن صدره المنتهى چون که این منتهى به معنای آ مثل به معنی استگاه آخر چون این پایان و ایستگاه آخر فرشتگان است. از اینجا که فرشته هرچی میبرند به بالا به آسمان ها یا از اونجا میبرند اون ایستگاه می و توقف همون صدرت المنتحه هست از اون به بعد اون طرفتر نمیتونن بیره حتی فرشته نمیدونه چه خبر است. در شب معراج که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفتند جبریل تا همون جا همراه بود بعد از اون جبریل دیگه رسول اللہ را گذاشت خود رسول اللہ به خود رب برد او را پس منتحا به این خاطر میگویند که پایانی هست و درباره این درخت روایت های زیادی هست رسول الله صلی الله علیہ وسلم می فرماید که این درخت چنان زیبایی داشت و چنان جلالی و عظمتی بر اون درخت و تجلی از پروردگار بر اون درخت بود که زبان از تعریف کردنش قاسر و کوتاست فرمود در تفسیر قرطبی امده غشیها نور رب او الملائکه نور ربیم نور ملائکه او را تحت پوشش قرار داده بود. و روی اون صدرم ملائکه نشسته بود. خیلی درختته بزرگی. این قدر بزرگ اینقدر الان بعضی رو ضعیف هم هستند که انسان یکصد سال با اسب زیرش بدود باز هم به با اون طرفش نمی رسد. لذا؟ این مربوط به عالم غیب هست چیزایی که ما ندیدیم ولی اینکه در اقل ما نمی گنجد ولی وقتی که وحی الهی میگه انسان دیگه اینجا اقل خودش را به کار نمی برد وحی را و آنچه که در قرآن هست تسلیم میشه عندها جنت المأوا نزد او هست جنت المأوا نزد سدرۃ المنتها جنت المأوا در باره جنت المعوه در قرآن همین اندازه آمده بیشتر نه آمده که جنت المعوه کجاست همین قدر ما می دونیم که اسم یک جنتی هست جنت المعوه حال بقیه علماء از روی اجتحاد و استدلال چیزهای گفتند مثلا بعضی میگن جنت المعوه همون جنتی است که ابتدان حضرت آدم علیہ السلام اونجا قرار گرفت اونجا سکر نگذید معوه آدم بود بعضی میگویند جنت المعویٰ جایی هست که ارواح مومنین اونجا قرار میگیرد و بعد از اونجا به بههشت ایکال一点 می بعض میگن جنت المعویٰ جایی هست که ارواح شهدا اونجا هست و بعضی میگویند که جنت المعویٰ جایی هست که ابتدا مومنین اونجا میرن بعد از اونجا هر یکی وارد بهشت خاص خودش میده والله عالم قرآن بیشتر نگفته همین قدر هست که جنت المعوى در روایت عبدالله بن مسعود هست جنت المعوى در جانب راست عرش پروردگار واقع شده اونجا که صدر هست اون طرف جنت المعوى هست یہا مربوط به عالم غیب هستن الله بهتر میداند الله عز و نصیب من و شما بگردانا جنت المعوى را اذ یغشا صدرت ما یغشا وقتی که تحت پوشش قرار گرفت قرار داد اون درخت سدره را اون چی که تحت پوشش قرار فرمایند که روی سدره فرشتگان بودند مثل پرنده نشسته بودند و از سدره پروانه های میریخت پایین یک زیبایی و یک جلال خاصی داشتند نور خاصی که اینها طلا بودند یا مروارید بودند ما زاغ البصر و ما تغه. الله می‌فرماد چشم کج ندید. اون چیزی که دید واقعیتی. گای بعضی افراد به چشمشون چیزی میاد و ما تغه یعنی منحرف نشد، به انحراف نرفت. لقد رآ من آیات ربه الكبرى همان این پیامبر از آیات کبره پروردگار در اون دید از آیات بزرگ دید عرش رحمان را دید عرض کنم کرسی را مشاهده کرد جنت المعوارا جهنم را جنت را صدرت المنتحارا همه ها از آیات کبرای رب هستن لذا الله عز و جل می این پیامبر را را گم نکرده اشتباه نگفته این بچینین مقامات شامخ و بلندی نائل گشته چرا شما به این ایمان نمی آورید؟ افرائیتم اللات والعزا از این به بعد خدا تعالی نفی می شفاعت غالب خدایان باطل را خدا می فرماید آیا شما به من خبر بدهید از لات و عزا از کردم لات اسم یکی از بطها بود که در گذشته مردی سخاوتمند بود بر سنگی نشسته بود همیشه کان یلوت سویق و ستو را با آب قاطی می به هاجیها میداد. این مرد وقتی که مرد مجسمش را درست کردند شد لات عزا هم نام جنیهای بود که مردم را عبادت می کردند. و در وادی نخله بود بعضی میگن در الله بود همون که در مسلیله خانده مزیرت خالد را فرستادند ازدار از بین ببره و خیلی مشرکین نامهایشون هایشون عبدالعوزا بود این ابو لحب ملعون که در قرآن ذکرش آمده اسم اصلیش عبدالعوزا هست لذا آیا به من بگوید از لات و از و منات هم یکی از بود شما در مقدمه همه اینها تحقیقشون را خاندید و منات که سومی هست و آخری هست شما از اینها بگید اینا چه قدرتی دارند اینا چه توانی دارند؟ اللهُم اذکر و اللهُ الْانسَ باس خدا می‌فرماید که آیا برای شما مرد هست برای شما پسر هست؟ و له الانسه برای خدا دختر چون می فرشتگان دختران خداستن؟ تلک اذن قسمت ضیزا این درین هنگام یک تقسیم ناقص است قسمت ضیزه تقسیم ناقص یا تقسیم ظالمانه که شما برای خودتون پسر می برای خدا دختر بر اساس اقاید اونها خدا من با انها سقن می فرماید و هال خدا تعالی می فرماد که انها شما دختر می نامید شما بعضی پسر، بعضی نائب خدا، بعضی را دارای فلان تصرف، فلان اختیار، فلان قدرت این القاب را، این صفات را شما بهشون دادید این القاب را شما بهشون دادید خودشون از این خبر ندارد از این القاب شما و پدران شما ببینید خیلی از مردم هستند متاسفانه اهل خرافات که در محبت مفرط بزرگان گرفتار می شوند بعدن یک سری القابی برای اونها بیان می کنند که این القاب بوی شرک می ده این القاب بوی شرک می ده مشرکین همچنین القابی برای خدایانشون خودشون وز کرده بودند در این آیات میخانیم اینها را شما نامگذاری کردید پدران شما کردند و اونها چنین نبودند که شما میگوید هیچ دلیل و مدرکی هم وجود ندارد به عنوان مثال مردم به بعضی از اولیاء خدا چی میگن؟ میگن غوث اعظم غوث اعظم معنیش چیه؟ یعنی بزرگترین فریادرس. در حالی که غوث اعظم خداوند عز و است فقط خدا به فریاد ما می رسد کسی دیگه نیست یا یکی از بزرگان در لاہور پاکستان دفنه اسم لغبش را گذاشتن دستگیر عالم دستگیر عالم تمام دنیا را دستگیری می دستگیر این دستگیری که در فارسی هست به اون معنا نیست یعنی دست ما را در مشکلات میگیرد مشکل ما را حل میکند شعری درست کردم برایش داتا قنجبخش فیض عالم نور مظهر خدا داتا یعنی دهنده همین لقب ها را الله میفهم شما درست کردید خدا نگفته به اینها اینا خودشون همچینی نیستن داتا یعنی هر چیز را دهنده گنج بخش یعنی به انسانها ها گنج و خزائن می بخش. هر چی بخای بهت می بخش فیض عالم تمام عالم را فیض میرساند این القاب و این صفات مال خداست خدا داتا هست خدا گنج بخش فیض عالم فقط خداست غوص اعظم فقط خداست دستگیر عالم فقط خداست لذا شبیه این که ما امروز در منطقه خودمون داریم در دنیای خودمون داریم در دنیای اون روز برای بوتا چنین چیزهایی قال بودن الله فرماید ان هي الا اسماء نس ان مگر نام هایی هست که سمیتموها شما نامگذاری کردید انتم شما و اباؤکم و پدران شما ما انزل الله بها من سلطان نازل نہ فرموده خدا به اینها یعنی به معبودیت ها بلاء معبودیت آنها هیچ نو مدرکی من سلطان یعنی ندلی عقلی و دلیل نقلی پس این را از کجا آوردند الله میفرماید این از تخیلات باطلشون این یتبعون الا الظن اینها پیروی نمیکنند. مگر خیالات بی اساس را پیروی میکنند و ما تهوا الانفس که تشکى خواهش نفسشان باشد که خواهش نفسش باشد یعنی اینها دنبال خواهشات نفسشون هستند ولقد جاهم من ربهم الهدا نباید انسان دنبال خواهش نفس باشه نباید انسان دنبال تخیلات باشه چیزهای پوچ باشه در حالی که خداوند برای ما هدایت و رستاده دنبال هدایت باشیم نه دنبال چیزهای پوچ لذا الله می‌فرماد ولقد جاهم من ربهم الهدا همانا آمده از جانب رب بشان بواسطه پیامبر هدایت آمده هدایت چیه قرآن هست عمل الانسان ما تمنا خدا می فرماید که آیا هرچی انسان تمنا بکند تخیل بکند تواهم بزند مگه میشه یکی تخیل می کند که این بوت به من میده این بزرگ به من میده مگه همون نخیر هیچ چیزی با تخیل و با تمنا و با آرزوی پوچ و باطل به دست نمیاد ای لیست الاشیاء و الشحوات تحسلو بالامانی اشیاء شهوات یعنی اون چیزی که دل ما میخواد با آرزوها به دست نمیاد بل لله الامر همه امور به دست خداست عمل لسان ما تمنا نا فللله الاخرت والاولا آخرت اوله یعنی دنیا و آخرت فقط و فقط مال الله است اون چیزی که الله میخواد و کم من ملك في السماوات این اعاده مدعاس گفتیم که هیچ کس نمیتونه شفاعت غالب بکنه شفاعت غالب یعنی اون شفاعتی که خدا نخادو کسی بکنه نه ملک میتونه نه نبی میتونه نه ولی میتونه لذا انجا خدا مند شفاعت را نفی میکنه از ملک البته اگر رضایت خدا و اذن خدا باشه خدا خودش به بندگان خودش به عبید خودش کرامت میبخشید میگه شما اجازه دارید برای ده نفر شفاعت کنید برای هفتاد نفر برای این همه مردم و کم ملکن چقدر قادر از فرشتگان هستم فی السماوات که در آسمان ها لا تغنی شفاعتهم شیئن فائده نمی دهد ده شفاعت انها هیچ چیزی الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاؤ و یرضا مگر بعد از انکه خدا اجازه بیدهد اونم برای کسی که خدا بخواهد و خدا راضی بشه خدا بخواهد و خدا راضی بشه. اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لا يسمون الملائكه تسميه بعض هم زاجر برای مشرکان برای عقائد باطلشان برای خرافاتشان الله می فرماید ان الذين لا يؤمنون بالآخرة. همانا انهای کی ایمان بی آخرت ندارم مثل مشرکین لیسمون الملائکة البت نام گزاریمی کنم ملائک را تسمیت الانصب بنام مؤنس دختر میگن دختران و ما لهم به من علم نیس برای انها نسبت بی این چیز هیچ علمی یعنی هیچ دلیلی ندلیل اقلی ننقلی ندلی ندلی نواحی این یتبعون ایلا الظن این ها دنبال نمی مگر گمان خودشان را تخیلات بدون دلیل را و این الظن لا یغنی من الحق شیئا همان گمان انسان دف نمی کند از حق چیزی یعنی گمان نمی تواند به انسان بدهد انسان رب بحق نمی رساند فا اعرض عم گمان نمیتواند بلکه دلیل شرعی میتواند هدایت و راهنمایی خدا میتواند فاعرض عن من تولى لذا تسلی برای پیغمبر اعراض کن از اون کسی که پشت میده از ذکرنا از کلام ما ببین چه چی چیزی ما را راهنمایی میکنه قرآن. پس ای پیغمبر هر کسی که نسبت به قرآن پشت میدهد تو از او اعراض کن ولم یورید الا الحیات الدنیا اونی که اراده نداره مگر زندگی دنیا را مبلغ مبلغهم من العلم مبلغ انها از علم همین دنیا است یعنی چی؟ یعنی بالاترین اطلاعاتی اونها درباره دین نیست درباره دنیاست. دنیا است در دنیا است ایک دعایی که ما منقول داریم از پیغمبر دعای مفصلی هست؟ در اون دعا هست ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا یعنی بار الیها دنیا را قرار نده بزرگترین هم ما که همش فکر کنی به دنیا به هیچ فکر نکنیم به آخرت هیچ فکر نکنیم به قبر فکر نکنیم ولا مبلغ علمنا یعنی دنیا را قرار نده بالاترین حد علم ما یعنی علم ما اطلاعات ما دانش ما فقط در بار دنیا باشد اما در بار دین هیچ نه چینین نباشد هیچ مسلمانی هم نباید چینین باشد وقتی که در بار دنیا صحبت میکنی این قدر بلد است از تکنولوژی اینقدر مخش مخشکار میکنه همه چیز را میداند اما نماز اتحیات بخون بلد نیست درباره اولین ارز کنم ضروریات دین خبر ندارد این دیگه یک زعف هست یک نقص هست یک مشکل بسیار بزرگ هست علم دنیا خوب هست ولی علم دنیا در صورتی که انسان علم دین را بیشتر از علم دنیا داشته باشد. لذا الله می فرماید گاهی بعضی از افراد باسواد ما هستند که ماشاءاللہ از نظر مدرک و پیزشکند دکترند متخصصند بالاترین مدرک دانشگاهی را گرفتند اما نماز که میخونند حرکاتی از اونها در نماز میبینیم که مردم آمس میخندند بلد نیست نماز این ضعف است چرا یک مسلمان در باره امور دنیا اطلاعاتش فوله اما در باره اموردین صفره وزیر صفره اینجا خدای تعالی به کفار و مشرکین میگه که اونها چون اراده ندارن مگر زندگی دنیا را ذلک مبلغهم من العلم همین دنیاست بالاترین جایگاهی آنها از علم و درجه آنها یعنی ان منتهى علم آنها به دنیاست و بس إنا ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هم أن ربته بهترم إذا نتشكسي قمراس أزره و هو أعلم بمن اهتدى و بهترم إذا نتشكسي بار هدايته ولله ما في السماوات وما في الأرض إنهم دليل أقليهس براية بيان التوحيد الله ميفرم أي ولله ما في السماوات وما في الأرض فقط و فقط برای الله در تصرف و اختیار الله تمام تصرفاتی که در آسمان ها و در زمین هستند لیجزی الذین اساؤ بما عملو این لام لام عاقبت است یعنی در عاقبت کار و نتیجه کار خدا جزا می ده اعمال می رساند کیفر اعمال می رساند کیا را الذي اص و که بد کردند اصاب به شرک هم میآید بزرگترین بدی شرک است و دیگه گناهان اونهایی که بد عمل کردن اونها را خدا به اعمال اععمل میرساند به مع امو به عمل کردن و زییه الذي نه احسن جزا میده اون کسانی را که مخلص شدند جزای چی میده؟ حسنا میده حسنا یک تفسیرش بهشته. یعنی بهشت میده یا جزای نیک به اونها میده الذين احسنوا بالحسنه مخلصین کیا هستند الذين احسنوا کی اللہ صفات الذين اژ کنم الذين احسنوا را ذکر کرده یعنی صفات محسنین الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش انهایی هستند که اجتناب میکنند دوری میکنند از گناهان کبیره و از گناهان بی حیایی فواحش کرهای فحش گناهانی که آنها مربوط به سوء اخلاق هستند الا لم مگر لغزشات معمولی لم میگویند لغزش کوچک گناه کوچولو کوچولو گاه انسان دیگه از انسان سر می زند این لغزشات کوچک را خدا معاف میکند اما انسان از کبائر باید بوگریزد دور بشه از بی هیای دور بشه ان ربک واسع المغفره انسان اینجا امیدوار میشه که گناهن کوچک کوچک را الله میفرماید ان ربک واسع المغفره مغفرت رب تو خیلی وسیع است لذا به اندک نمیگیرد انسان را خوردگیر نیست ما گاهی خیلی سخت می گیریم به اندازه سخت می گیریم که خدا اینقدر سخت نگرفته این ربک واسع المغفره هو اعلم بکم البته یک وقت مغرور نشیم عجب نیاد تکبر نیاد هو اعلم بکم او بهتر می که شما چه کالایی هستید شما چی هستید زیاد ادعا نکن ادعای بزرگی هم نکن او بهتر میدانه نه از امروز از اون روزی که شما جنین بودید جنینی در شکم مادر بودید از اون روز شما را میداند هو اعلم بكم او بهتر میدانه شما را اذ انشاکم من الارض آن روزی که شما از زمین آفرید و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم زمانی که شما جنین بودید یعنی تکه گوشتی بودید دست و پای داشتید در شکم مادرانتان فلا تزکو انفسکم پس خودتون را پاک جلوه ندهید یعنی نگو من پاکم من بزرگم من چنانم نه هو اعلم به او بهتر میداند چه کسی متقی است چه کسی پر هیزگار است؟ ل پرهیزگاری نبا ادعات نبا ظاهر است؟ خدا بهتر میداند افرائی الذي تولله در این رکوی آخر خدای عزوجل زواجل ابتداعا زجر و سرزنش بیا میفرماید برای کفار متمرد سرکش؟ اونهایی که باور نمی کنند و پشت می به قرآن اما این کسی که اینجا اشاره به اون شده ابتدا پشت نداد ابتدا مقدار تمایل نشان داد قبلا داستانش را برای شما عرض کردم ولید ابن مغیره که پدر حضرت خالد ابن ولید هست این ولید ابن مغیره از کردم مرد بزرگی بود از نظر دنیاوی و از نظر منصب یک جایگاهی در میان اهل مکه داشت این وقتی که آمد کلام رسول الله را شنید متأثر شد مردم احساس خطر کردن ابو جهل، بقیه که اداره ایمان میاره او را زدند آرش دادند و تعصب پدران و تعصب قومیش را تحریک کردند تو, تو کی هستی؟ تو چه شخصیتی؟ تو چه جایگاهی داری؟ تو مغز متفکر عرب هستی؟ تو رهبر فکری ما هستی؟ تو می خواهی؟ او چون که متاثر از کلام خدا شده بود او گفت که من می ترسم که اگر چینین چیزی باشد چنین واقعیتی باشد اون وقت گرفتار نشم گناهی برای من نشه یک خبیص و نفسی اینجا بود اون گفت که به من مقدار پول بده من گناه تو را به گردن خودم میگیرم هرچی گناه مال تو بود به گردن من باشه. این هم مقدار مال بهش داد و گفت از این وقت گناه تو بر من ایسا خدای از و جل این ذکر فرموید انجا افرائیت اللذی تولا آیا دیدی ان کسیره که تولا پشت داد یعنی ولید ابن مغیرہ و اعطا قلیلا مقداری داد الان بعضی گفتم و اعطا قلیلا مقداری مال داد و یعنی سخت باز آمد از اسلام و از ادامه دادن باز آمد و خارج شد از اسلام همون تمایلی که نشان داد پشت داد بعضی گفتند که و اعتا قلیلا یعنی مقدار اقرار کرد این به معنای دادن مال نیست میگویند که ابو جل به او گفت که اگر گناهی است بگردن من او ابتداءن ولید چیکار کرده بود ابتداءن گفت که من می ترسم چون این کلام کلام معمولی نیست اِنَّ اَسْفَلَهُ لَمُغْدِقْ وَإِنَّ اعلاه لَمُثْمِرْ پایینش چنان درختی از پایینش پر آب ریشه تو آب بالاش خیلی شاخ و برگ و سمرش زیاده یعنی این قرآن کلام عجیبی هست او گفت گفت که همي اعطى قليلا همين همي اقرار بحق است همي اعتراف بواقية رميق قرآن قرتبئين قفته اما ابو جهل قفناه نترس هر چباش بگردن من لذا اللهم فرمايت افرأيت الذي تولى واعطى قليلا اللهم قرتبئ قفته كان الوليد ما دح القرآن قرآن رتعريف کر ثم امسك عنه بعض آمد فنزل این آیه نازل شد و اعطا قلیلا ای من خیر بلسانه مقداری خیر بزبانش آمد اعتراف آمد و اکدا یعنی قطع عنه و امسک عنه قرطبی اکدا یعنی باز آمد دیگه بیشتر ادامه نداد بیشتر قرآن را تعریف نکرد سخت خارج شد و به بمانه سخت خارج شد خداوند میفرماید اعنده علم الغیب آیا مگر نزد این علم غیب هست فهو یرا او می بیند را حتما فکر میکنه که واقعیت در جای دیگه هست حال خدای تعالی برای این ملعون دلیل نقلی ذکر می فرما براین و امثال این از صحیفه ابراهیم و از صحیفه موسی اب لم یونبع بما فی صحف موسی آیا این خبر داده نشده یعنی اطلاع ندارد اون چیزی که در صحیفه های هست و صحیفه های ابراهیم کدوم ابراهیم الی وفى فزیلت ابراهیم اون ابراهیمی که احکام الهی را کامل کرد وفى به عهد کرد همه دستورات رب را اجرا کرد نمیدونه در صحیفه اون ابراهیم و موسا این مطلب هست که الا تزر وازره وزر اخرى اینکه هیچ کسی بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد هر کسی بار خودش را خودش می دوش می گرد وزر می گوییم بار گناه لا تزر یعنی حمل نمی کند به دوش نمی گیر بار گناه را وازره هیچ گناهکاری هیچ حمل کننده وزر اخرى بار گناه نفس دیگر را هر نفسی بر گناه خودش را خودش میگشد ببین اگر کسی بگه گناه تو بر گردن من هیچ وقت بگردنی او نباشد نمیبشه همین که میگه بگردن من این خودش یک گناه یا ای این گناه مال خودش هست همین که او را گمراه میکنه این اغلال یک گناهی هست بر گردن خودش هست اما اون کننده اون گناه خودش را خودش به دوش میگیره این در کجا آمده؟ در تعلیمات انبیاء گزشته و اکنون در قرآن هم خدا بیان می فرماید که الله تا زیر و هیچ کسی بار گناهی دیگری رو به دوش نمی و دوم و اللیس لیل انسان الا ما صاع نیس برای انسان مگر اون چیزی که خودش تلاش می کند به انسان چی می رسد اون چیزی که خودش تلاش می کند اون چیزی که برادرت میکنه. شیخت میکنه پدرت میکنه به تو نمی رسد مال تو به تو می رسد مال خودت به تو می رسد وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ یورا. همانا سعیش انقریب نشان داده میشه که ای انسان تو این کار را کردی ثم يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى سپس به او جزاء داده میشه جزای کامل ببینید از ظاهر این آیه معلوم میشه که همونطور که هیچ انسانی گناه دیگری را به نمیگیرد و اگر کسی گناهی بکند ضرر این گناه به خودش هست به دیگری نمی رسد صد بار دیگری بگه بگردن من همچنین کسی کار خوبی بکند کسی کار نیکی بکند عمل صالحی بکند ای این عمل صالح مال خودش هست به دیگری نمی رسد آیا چنین هست این مطلق نیست بعضی از اعمال صالح که ثابتند در قرآن و سنت اونها عمل صالح را شما انجام میدید، ولی ثوابش نفعش به پدر شما هم می رسد مثل ایسا سواب اینجا میخوام بحث ایسا لسواب را ذکر کنم بعضی از ظاهر آیه این را میفهمند که حتما هر کسی کارش برای خود عملش برای خود نخیر خیلی از اعمال هستند که انجام میدی شما نفعش به دیگران میرسد مثلا یک دعا اولی چیه؟ دعا هست دعا یک عملی هست که شما میکنید ولی این دعا نفعش خیرش به دیگری میرسد. مثلا شما میگه خدا برادر من ببخش. خدایا برادر من شفا بده. خدایا پدر من را شفا بده. یا خدایا پدرم را ببخش. اگر این دعا قبول بشه نفعش به پدر میرسه به برادر میرسه. چه در این دنیا باشد چه در اون دنیا باشد. این از حدیث ثابت از آیه ثابت مگر قرآن مجید تعریف نکرد شما می که بعضیها هستند مؤمنین که دعا کنند رب نغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان با اله هم مارا ببخش هم برادرانی که قبل از ما ایمان آوردن اونها هم ببخش مگر ما برا برای برادران مؤمن خودمون برای سلف خودمون دعا نمی کنیم الله این نفع دعا به اونها میرسه. اونها هم برای ما دعا کردن گفتن خدای های آینده را مثلا هدایت کن دعایشون به ما رسیده، دعا انبیا به ما رسد دعای فرشتگان شما در سوره مؤمن خاندی فرشته دعا میکنه، انبیا نوال سالات و السلام دعا کردند، گفت که پروردگار وقت للمومنین و المومینات دعاش اجابت میشه، پس در قبولیت دعا هیچ شکی نیست. صحابه آمدن گفتون یا رسول برای ما دعا کن برای پدر ما دعا کن برای مادر ما دعا کن دعا کردن در نظر دو عمل نیکی که شما انجام میدیم مثلا صدقی میدی صدق هم قبول بیشه برای پدرت برای برادرت ثوابش را میبخشی اینها که ابتدار عرض کنم اتفاقی هستند هیچ که اختلافی تویشون نداره حضرت سعد بن عباده آمد گفت رسول الله مادرم وفات کرده اگر من صدقی بدهم برایش قبول میشه گفت بله حتما قبول گفت چه صدقی بدم گفت آب یعنی بهترین صدقی چیه؟ آب هست منش چیه؟ منش اینه که یک جای آبی را احیا کن تا مردم از آب استفاده بکنند، حیوانات استفاده بکنند، چارپاین استفاده بکنند، پرندگان و مورها استفاده بکنند تا ثوابش به مادرت برسه. مثلا کسی چای هفت میکنه، کسی قناتی، کسی از به خدمت شما تانکیری میگره، تو مسجد میذاره و یخچاری، ای که همه مردم راحت ازش آب بخورند، این بالاخره ثوابش را به پدرش ببخشه، به مادرش ببخشه، تو این هیچ که شک نداری نه از ندار ثابت هستن دیگه صدقی جاریه که رسول الله صلی الله علیه وسلم سنو صدقی جاریه فرمود انسان وقتی که می عملش قط میشه مگر یکی از سه چیز یکی از این سه چیزی که همین صدقی جاریه هست مسجدی انسان درست می کند عرض به خدمت شما چاهی حفر می کند خانه درست می کند خانه درست می کند که از اون بنا مردم استفاده می کند خودش مرده سواب بهش می رسه. یا فرزندش درست میکنه برای او سواب بهش می رسه. دوم فرمودن علم میرا که به جا دیگران ازش استفاده می رسه. سوم سوم او اولدن صالحن یدعو اون همون دعا که اول ارز کردن فرزند صالحه که دعا میکنه کند لذا فایده این دع می‌رسد از خب درباره عبادات مالی شکی نیست و هیچ اختلاف بین علما نیست اما عبادات بدنی آیا ثوابش میرسه. می‌رسد عبادات بدنی بعضی از مثل امام مالک رحمه الله و امام شافعی معتقداً که نمی‌رسد اما درباره حج اختلاف ندارند چون درباره حج هم حدیث هست البته حج دو بود دارد هم عبادت مالی هست هم عبادت بدنی هست هم مال صرف میکنی خودت را اونجا میرسانی و هم باید بدن سالمی داشته باشی تواف کنی ارز کنم سعی کنی تمام اعمال را وقوف کنی انجام بدی پس کسانی که حج پرسید از رسول الله یا رسول الله آیا از طرف پدرم حج بکنم از طرف کسی که فوت کرده حج بکنم رسول الله اجازه دادن حج بدل بالاخره یک مسئله مسئل مسلمی هست اما اون عبادات بدنی که اونها از کنم که در اونها مالی نیست فقط بدنی هستن از نظر فقه های احناف ثواب اینها هم می رسه ثواب اینها هم البته از نظر بعضی فقه دیگر مثل امام شافی قول هست امام نووی هزیشون فرموده که روز نماز اگر انسان برای مرده بخانه میرسه رسه اما جایگوزینی چی میشه؟ جای همون روزه و نمازش میشه ان اما ما میگیم اونم درباره باره انسان ثواب است تو احادیث آمده کسی از طرف موردش نماز می یا روزه میگیرد این نماز و روزه به اون میرسه یعنی ثوابش میرسه حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها اعتکاف نشستند به جای برادرش برای برادرش عبدالرحمن ابن ابی بکر اعتکاف نشست لذا ما معتقدیم که بقیه اعمال هم سوابشون میرسه شما نمازی برای کسی بخونی تلاوتی برای کسی انجام بدی بالاخره وقتی که دیگه اعمال میرسه اینها هم میرسه این رفقای فقهای میگن منظور اینه که ولیس للانسان الا ما سعى مطلبش مثل اون گناه است که گناه را میکنه میگه بگردانی او اینجا باز عمل نمیکنه میگه عمل او برای من این این طور نیست هر انسانی خودش سعی میکنه اما در باب ارسال ثواب انسان اگر سوابی بفرسته ان الله الله تعالی به اون میرساند لذا الله می فرماید و ان ربك المنتح. اینها در صحف ابراهیم و موسی ابراهیم و موسی بوده که إلى ربك المنتهى بازگشت منتها آخر العمر رسیدن به محضر رب هست در محضر پروردگار هست و انه هو اضحک و ابکا همانا اون پروردگار هست که می خنداند و می و انه هو امات و احیا همانا پروردگار هست که موت میدهد و زنده می کند و انه خلق الزوجین الذکر والانثا همانا اون پروردگار هست که آفرید زوجین را مرد و زن را او آفرید و انه هم من نطفت ازا تمنا از یک قطر نطفه وقتی که او انداخته میشه و انه علیه نشعت الاخره همون طوری که در دنیا خلق کرد آخرت بار دوم هم خلق میکنون بر او هست پیدایش بار دوم و انه هو اغنا و اقنا همین ها در کتاب های انبیاء آمده در صحف انبیاء آمده وانهو هو اغنا و اقنا همانا اون پروردگار است که اغنا سرمایدار می کند و اقنا فقیر می کند قال الاخفش اخناس قال الاخفش اقنا یعنی افقر فقیر می کند وانهو هو رب الشعراء همانا اون پر است که او اوه رب شعرا شعرا چیه شعرا نام یک ستاره بود که مردم ورا عبادت میکردند قوم بنو خزاعه عبادتش میکرد هو کوکبون کوکمون يطلع بعد جوزا، بعد از ستاره جوزا في شدت الحر خیلی گرمی شد این طلوع میکرد و كانت خزاعه تعبدها لذا الله می فرماید ربي ان ستارههم هم منم و انه هو رب الشعراء و انه اهلک عاد الاولاء، همانا اون پروردگار است که حلاک کرد عاد اولارا یعنی قوم حود قوم حود خدا حلاک کرد و ثمود و همچنین را فما ابقا پنج نمونه از عذاب اینجا هم ذکر شده اول قوم عاد ذکر شد و ثمود را فما ابقا الله نگذاشت یعنی من هرم حلات کرد وقوم نوح من قبل وقوم نور قبل زنها هلاك کرد انهم کانوهم اظلم و اطغا این علت عذاب چرا خدا عذابشون داد؟ هم کانو همانا اینها بودن هم ازلم آنها زالم ترین مردم و اتقا سرکش ترین مردم اینها بودن سرکشی کردند و المؤتفکت اهوا و همچنین روستاهای سرنگون شده را اهوا انداخت یعنی قوم لود روسته را سرنگون کرد و از آسمان انداخت به زمین فغشاها ما غشا تحت پوشش قرار داد انها را آنچه که تحت پوشش قرار داد این بیان شدت عذاب یعنی خدای از و با انواع عذابها اینها را تحت پوشش قرار داد سنگ های بر اونها باراند که اونها را لهمی کرد فب ای اعلاء ربک تتمارا بعد از این تخویف الله می فرماید کدام نعمتهای رب تان در باره اونها شک دارید یا در باره اونها جدل دارید و بحث دارید بعد از این مراحل تخویف الله حبيب شرا معرفی میکنه که این پیغمبر هم پیغمبری هست مثل پیغمبرانی گذاشته. هذا نذیرم من نظر الا. این هم یک ترساندگی هست، یک نذیری هست از نظر اولا از اون نذیرهای اول، از اون پیامبرانی که قومهای خودشان بیم دادند، این هم ربیم میده هشمارا. از فت الازفا، اما این پیغمبر خصوصیتش اینه که بعد از این پیغمبر قیامت نزدیکه ازفت الازفه نزدیک شد نزدیک شونده یعنی نزدیک شد قیامت چرا به قیامت آزفه میگن قبلا شما خاندید لعجل ازوفها چون قریب است وزف منا نزدیک ازفت نزدیک شد نزدیک شونده لیس لها من دون الله کاشفه نیست برای اون قیامت از الله هیچ کسی کشف کننده یعنی هیچ کسی نیست که پرده را بردارد و قیامت را ظاهر کند اف من هذل حدیث تعجبون الله اینجا سرزنش می کند کفره. آیا از این سخن تعجبون شما تعجب میکن؟ از اینکه قیامت میآید؟ و تعجب میکن و می خندید و تحکو ولا تبکن. و میخندید استهزا میکنید و گریه نمیکنید شما میخندید گریه نمیکنید از خوف خدا و انتم سامدون در حالی که شما سرکشی میکنید سمود سرکشی را میگند غرور را میگند آیا شما میخندید گریه نمیکنید سرکشی میکنید نه نکنید بندگان من نکونید چکار کنید فسجدو لله وعبدو پس فقط و فقط سجد کنید برای الله وعبدو الله را عبادت کنید کسی غیر از خدا را عبادت نکنید صدق الله العظیم